الحمد لله والكفاب السلام على عباده الذين استفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرشمان الرحيم فأما من طفى وآخر الآيات الدنيا فإن الجحيم هي المعبى وأما من خاف مقام ربيه ونهن الثاني لسباب فإن الجنة هي المعبى صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من أتبأ نفسه هواها وتمنى على الله الأمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورحمة ذلك من الشاهدين والشكين تصدق الله سابرنا دین اسلام دینی که زایده افکار و آخام یک فرد یا یک شخص باشه نیست دینی نیست که در یک پارلمان و یک محفل سیاسی یک سری قیود و شروط و یک سری ضوابط رو تعیین کرده باشه بلکه خاطر از عقول و افهام بنی نوع بشر مواسیم این دین توسط فحیه الهی بعد خاتم و امام الانبیا رحمت و نازل شد اساس این قانون نامه و اساس این منشور هدایت بر رحمت هست من نکردم خط تا سودی کنم بلکه بر بندگان جودی کنه خدا میخواد با دین خودش نعمت خودش رو برمندگان تام بکنه با اون شرافت و کرامتی که خود ذات خدا به این انسان ارزانی کرده اون رو برای این انسان حکس کنه و در ادوار مختلف تاریخ ثابت بوده این قضیه اون که اون کسانی که شرافت ها و کرامت های خودشون رو نخواستن با موازین شرعی و چارچوبی که دین تعین کرده یفت با هر چیز دیگری خواستن شرافت خودشون رو یفت کنند مجموعی از شر آفت شده. اون چیزی که اصل اساسی و رکم رقیم در همه ارکار اسلام هست و گفت مقنای و قانونگذاری اسلام هست قبلت زدائیه اسلام با هر نوع قفلتی مخالفه قفلت در عرضهای مختلف قفلت زمین تازه هر نوع خرابی در جامعه است و کل شئونات زندگی انسان به مختلف داره من مثال ساده می‌زنم. اگر کشاورز قابل باشه و دست روی دست بگذاره هر نوع خط و زمین کشاورش رو تهدید می کنم. اگر کشاورت قافل باشه و دست رو دست بگذاره و اون ابزاری که برای عمران و آبادانی این زمین هست از اون استفاده نکنه و جد و جهدی که خدا از او میخواد در این عرض انجام نده، هر راجعه و جانوری این زمین رو تهدید میگنه که شاور خودش منامده و خودش زمین نفوذ بلی ها و خرابی ها رو برای زمین خودش با قت مهیا کرد. اگر این که بیاد و بعدا شروع بکنه به بددویی و شروع بکنه به تحق و ابراز نفرت از این خس و خاشات و این حشرات و جانورهای موزی که بر زمین سرایت کردن قرحن با این مرسی سرایی و با این بددویی اینها از زمینش بیرون نمیشه ساد خانه اگر قافل زندگی بکنه این امارتش و این عمرانش هر چقدر هم مستحکم باشه و پرعرضش و پربه ها باشه اما وقتی قافل بود تاره های انکبوتیه انکبوت ها دور تا دور این خانه رو محاصره می کنند و به ظاهر بر کل این خانه تسلط می کنند سوسترین خانه ها به تعبیر قرآن خانه انکبوته ولی وقتی صاحب خانه قافل بود همین سوسترین خانه ها بر خانه اون مسلط می دور تا دور خانه او رو محاصره میکنه و به ظاهر یک برتری و یک تصدت کاملی رو بر این خانه برای خودش ایجاد میکنه حالا اگر صاحب خانه بشینه و فقط بدبوی بکنه و فقط تحنه و تشمیق به این انکبوت و تارهای انکبوتی او در دیدهانه میشه رایش اینه که صاحب خانه قفلتها رو کنار بگذاره سوستیها رو کنار بگذاره به میدان بیاد و جارو رو تمام اون تارهای انکبوتی که مدت‌های طولانی انکبوت تنده می‌تونه با یک تلاش خودش، با یک جدیت خودش، با یک پشتکار خودش همه اون‌ها اونها رو برملا بکنه چون این خانه ها سسترین رو بکنه این مثاله ها رو دادم برای تفهیم مطلب که ببینید قفلت در عرصه‌های های مختلف باعث میشه که حتی ضعیبترین و حتی پردترین موجودات برای انسان مطلب میشه برای همین انبیاء صلی و سلام وقتی که می در رأس امور اطلاعی خودشون چهار امر رمک داشتن مبارزه با کوس، مبارزه با شرک، مبارزه با بدعک و مبارزه با غفلت اگر ما اگر بخویم آسیب شناسی بکنیم و ریشه تمام بدیها رو پیدا بکنیم غفلت ریشه همه بدیهاست وصلت اگر در یک جامعه رواج پیدا کرد اون جامعه زمینه نفوذ کور زمینه نفوذ شیر زمینه نفوذ خراف پرستی و بدعت در اون جامعه ایجاد شد لذا عربیالی صلی و سلام تلاش میکردن تا در کنار اسلام و ایمان احسان رو هم در جامعه زنده بگانه و این احسان در حقیقت میشه گفت سلس دین هست احسان یعنی چی؟ احسان یعنی که انسان در هر لحظه کاملا با خدای خودش وقتی باشه و در تمام شعونات زندگی بدونه که الله مترسد اعمال او هست در همه شعونات زندگی بدونه که الله داره منو میدیده اگر پدر هست تو خانه میره با همین کیفیت احسانی بره اگر تاجره و در محیث کار خودش میره با همین کیفیت احسانی بره اگر خدمت دین میکنه قلم به میگیره با کیفیت احسانی به نست میگیره. و اون موقع جامعه میشه جامعه بیدار جامعه خوشیار و جامعه ای که بیدار و خوشیار بود زمینه های نفوذ کفر و شرک و بهت در اون جامعه قل و میشه ببینید دوستان من اولین کاری که دشمن در هر عصری میکنه اینه که نفسلت رو تو جامعه ها ترویج بده. امروز جنگ جنگ ارزش ها هست و تلاش میکنه قرب ارزش هایpast و future رو به خورد جامعه بده. و عدم آگالی رو در مابین توده جامعه ترویج بدهن. 70 درصد رسانه های دنیا امروز در دست یهود و و بعد از قلال دومین گذینه که اونها برای اطفال و استعمار قلب و فکر مسلمان ها در دست دارن همین رسانه ها هست همین آنتن های مختلف است. اونها با این آنتن ها و رسانه ها در حقیقت دارن مختبیات قلب من رو تعیین می کنن اونها در حقیقت دارن منو شستشوی فکری و ذهنی میدن اونا در حقیقت دارن عرضش های بارونه و احول رو به خورد جامعه میدن اونا در حقیقت میخوان تلاش بکنن تا در هر خانهی حرف برای گفتن داشته بشه تلاش اونها اینه که حرف نتنیه ها و حرف اوباما در هر خانهی وجود داشته باشه و اون اخبار و, و اون باورهایی که اونها میخوان به خورد جامعه بینه از پخر فرهنگی جامعه استفاده بکنه زمانی که هندوکان مستعمره انگلیس بود در یک جمع بسیار بزرگی یکی از افسرهای انگلیسی خطاب به تفشیری های مفیلیت گفت که این بعداً رسانه ای شد و به بیرون درست کرد که ما از شما نمیخوایم در وحله اول از این ملت هندوستان مسیحی درست بکنید ما در وحله اول از شما توقع نداریم که انجیل رو به دستای اینها برید و اینها رو پیروان ایسا با اون دیدگاهی که ما داریم بکنیم بلکه ما میخواییم در وحله اول شما افرادی رو درست کنید که قلبشون که پوستشون خونشون رگشون نسلشون نژادشون مال هندوستان باشه اما قلب و فکر و ذهن اونها مال ما باشه اونها در میکنن که استعماری بر فکر و قلب مسلمان ها ایجاد بکنه اونها تلاش میکنن تا روح اسلام را رو از من و شما بگیرن اونها تلاش میکنن در بحله اول من و شما را از قران بیگانه کنن از مفاهیم قرآن بیگانه کنن از تدبر در قران بیگانه کنن اونها در بهله اول تلاش میکنن که اون جوانانی که ربانم باللی بودن سجاده نشین شبها بودن و شبهاشون صبح میشد با تلاوت کلام الله مجید دیگه شبهای اونها شبهای اهل بدر نباشه اونها دیگه تلاش میکنن که اینها در روز فرسانم نهار نباشن چختاواران روز نباشن و کسانی که جیخلا رو در جهز گرفتن و خلیفه احار بر روی زمینن و جرسومه های افتصادی که مانع رشد به هدایت در آهاد جامعه هست این افراد این جوانان غینتمند این جوانان شهادت طلب که شهادت آرمان و آرزوی اونها باشد تو این جامعه وجود نداشته باشد جوانانی که تو قلبشون محبت نبی موج بزنه جوانانی که مثل علام اقبال بعد از کوله‌باری از علم کوله‌باری از تخصص کوله‌باری از ذخیره‌های ارزشمند علمی وقتی برمیگرده ممالک اسلامی خطاب به همه میگه هر او عشق مستفاد سامان اوست به بر در گوشه دامان اوست بله رفته و دانشگاه های مختبر دنیا رو تجربه کرده تخصوص های مختلف رو گرفته حالا برگشته آمده و اعلان میکنه ترسم عصر حاضر را شکستم این ترسم رو من شکستم ربودم دانو، و دامش شکستم این دام را شکستم و دانشو برداشتم من ابراهیم بار، خودم رو به آتش معاشره غلط فرهنگ قرب زدم ابراهیم بار. رفتم و در کنار جدا اخلاقی غ تن حاضشون متأثر نشدم تنها ها با ابتضال نیامدم تنها ها با افتثال برنگشتم تنها ها با مدگررای ها و تقلیض های کول برنگشتم برگشتم با یک آگاهی و اعتماد و دارم به شما میگم که حکمت گم مؤمن رو و حكممة ضاللت من دو مطلب پس گرفتم. یای من دارم به شما یک ذرسی میخوام بدم ابراهیم دار بر یک آتش معاشره قلط نشستم و قنچه توحید چیدم و برای شما آبودم علام اقبال رحمت الله صلی علیه با یک سینه پر عشق برگشت یک جوانی پر غیرت دینی پر شهامت دینی اشعارش رو که میخونی اون روحیه حماسی و اون روحیه انقلابی در اشعارش رو میتونی حس بکنی اونها ترسشون از این قشر تخصیل کرده است. بله یک آقای تخصیل کرده ای که غیر از ماضیت قارون نمیتونه به چیزی دیگه فکر بکنه یک آقای تخصیل کرده ای که غیر از پست و مقام و های عالی که در کنار اونها قلع را بکم و بزنه به چیزی دیگه نمیتونه فکر بکنه اونها از این وحشت نداره اون از یک مسلمانانی که اسم اسلام رو یدک میکشه اما از معاملات اسلامی فراریه و فکر میکنه تا من سود و ربا تو زندگیم نیاد جنگ خدا و رسول نکنم روش روش پشت اقتصادی ندارم اونا از این از این جوان نمیترسن اونا از کسی که فقط نماز میخانه اما نمازش اینه سلات تنها این الفحشاء و نیست از این نمازه خشک و خالی و زاهدانه اونها نمیترسن نمازی که توش روحه نمازی که توش تجدید میتاقه نمازی که توش احتانه نمازی که توش ایمان و احتقابه و نمازی که با هر سجدهش مسلمان پلی پلی به خدا نزدیکتر و نزدیکتر میشه. نمازی که وقتی دست تسلیم مسلمان در مقابل خدا بلند میکنه میدونه من عبدم و فراموش نمیکنه عبدیت را و میدونه طوق بندگی خدا گردن من هست موقعی که دست بسته در مقابل آقا و مولای خودش میسه مثل یک غلام خطاکار فقط میدونه سرکارم با خداست ایا کن عبد و ایا کن افتاین فقط تو تو باوه استعانت تو باب عبادت فقط تو کارساز مشکل گشاد و من از دو تو رو میخوام اولها از دیک حجی که تبدیل میگه که عادت شده و تبدیل میگه که سفر توریستی شده از این نمیترسد از حجی که فقط تبدیل شده به یک سفری و یک عیابی و زهابی و توش عشقی نیست توش ایثاری نیست توش بیداری و تحولی نیست توش حماسه و انقلاب دینی نیست اونا از این طور حجی نمی حاجی ما بدون موقعی که احرام تن میکنه و این لباس های خود خواهی رو از سند میکشه داره لباس خدا به تن میکنه احرامی می پوشه که خدا میپسنده. بدونه که من آمدم حج بیدار بشم آمدم رب البیت رو و رب خانه رو مردانه و بالهانه بگیرم و با خودم عشقش رو ببرم و محبتش رو ببرم. ونهار روزه رمضانی که کوتب علیکم کو صیام که ما علی من قبلكم لعلكم تتقون روزه که پایانش لعلكم تتقون میف و ثمره اون روزه رمضان تقوانید و این روزه میسرسه روزه که مسلمان حسب عادتش عادت کرده رمضان که میاد باید تشنه باشه باید گرسنه باشه باید فواصل زمانی فلان تا فلان به سمت قضا نره اما تو همین روزه به سمت تیبیه مبتدر یهود نصارا میده چشمش روزه نیست قلبش روزه نیست وجودش روز نیست و تدکیر درون نصیبش نشده فکر می کنه روزه تنها منحضره به شکمه روزه تمرین عبدیته تمرین بندگیه فا من یاد بگیرم که همه ها و همه های من باید تابع امر الله بشینه خوردن من، نوشیدن من، تکمیل شهوات و لذتهای من برای خداست. امساک میکنم از عقل امساک میکنم از شورت، امساک میکنم از تکمیل لذتها و شهوات حتی حلال، حتی حلال تا به نفس خودم بقبورونم که من بنده تو نیستم بنده خدا. پایان رمضان اگر بیداری آمد و تحول آمد اونا میترسند اما اگر من همون انسانی که قبل از رمضان بودن بعد از رمضان رمزان قافل تر بودم و اون انگیزه ترک معسیت و اون روحیه عیسی ر از خودگذشتگی و نوع دوستی و اون روحیه یک انسان مؤمن و موحد در من تجدید نشد اون از این روزه نمیترسد لذا همه حجمه ها و همه تلاش های خودشون رو خصوصاً در رمضان می دارن. تلاش می تا با یک سری برنامه ها با یک سری تفریحات ناسالم با یک سری ورزش‌های های با یک سری بلاخره ابتضال ها و بی ها در رمضان جامعه ما رو به سمت هیچی و فوچیسه اقنید و اون غیرتفا و شهامتهای دینی رو از ما سل کردن دوستان من، من خدمت شما مباهیش رو مطرح کردم، اینکه اسلام ما غفلت نمی بخوریم غافل نخوریم بسم الله و عد الله تس از قضا بکشیم قافلان نکشیم الحمدلله الذي اتْ اَمَنَ وَسَقَاد ملی؟ قبل از بعد از قضا بخوابیم قافل نخوابیم اللهم بسمك عموت و باحیا بیدار میشیم غافل بیدار نشیم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا ثوار ماشین میشی قافل نشو سبحان الذي فخر لنا دور درود بيانه میشی قافل نباش الحمد لله يد اعماق وجودت بگو و بنزل می منزل مبارک تو تمام شعورات زندگی تو طول لباس لباس پوشیدنه حتی موقع عیاب و ذهاب به محلی که برای دلق قضای حاجت میری همون جا هم قفلت نباشه اونجا جا هم یک دیری عدیه محصوره برای قفلت زودایی به ما اسلام تعلیم داده اسلام قفلت رو نمی پسنده کرام کرام رضوالله علی مجمعین یک لحظه قفلت رو جرم عظیم می دونستن. زمین ساز نفوذ شیطان زمین زاز تسلط نفر زمین ساز تمق کردن کفار و یهود و نصارا بر خودشون می دونستن و در مقابل غفلت ها گریه میکردن چرا غافل بودم؟ مرا مبادندم که بیاد تو بنشینم یک لحظه بدون بودن با خدا رو بر خودشون یک زنب لایقفر می و ساعت ها گریه می چرا غافل زندگی کردم؟ هنزله از خانه زده بیرون چند لحظه اون تعلق رابطی که باید با خدا داشته باشه در مجلس رسول صلی الله علیه وسلم داشته و الان نداره برای خودش جرمعظیم میفهمه نافقه هنزله نافقه هنزله چی شده؟ برای خودت داری مارک نفاق میزنی؟ بله تو مجلس رسول فاک کیفیت ایمانی خاصی دارم چرا تو خونه این کیفیت ایمان رو ندارم؟ نکنه این درویی باشه نکنه این نفاق باشه این قفلت رو برای خودشون جرمحظیم میگرستن ابو تلعید تو, نف... تو باغ خودش داره نماز میخوده در افنای نماز باغش پر میوه شده باغش پر تمرات شده خوشحال از این که امسال تونسته این قشق ذراعت و کشاورزی خوبی داشته باشه اما در همین افنا تو نمازش صحب میاد فوراً غیرت دینیش به جوش میاد چرا؟ چرا این باغ باعث یک قفلت و صحب در نماز بشه؟ من اینو نمیخ فورا به بارگاه رسالت میاد کل باغ خودش رو در راه خود صدقه می کنه هر چی که اسباب غفلت باعث ریشکد بشه اون اسلام حسنی نداره که امور الله یعنی و هیچ و پوچ تو شعار باشه اون اسلام حسنی نداره نشان حسن اسلام یک مسلمان و انسان اینه که تو اسلامش امور الله یعنی و بی فایده معنا نداشته باشه اسلام نمیگه تفریح نکنید اسلام با تفریح سالم مخالف نیست تفریح که توش خطره اسلام با ورزش مخالف نیست خود اسلام تاکید کرده به تیراندازی و تمرین کردن این ورزش های رزمی اسلام تاکید کرده به شنا اسلام تاکید کرده به سوارکاری اسلام تاکید کرده که مسلمان قوی از مسلمان ضعیف بهتره قوی باش اما با غفلت نه رسمنده باش با قفلت نه تو میران باش خاضر اما حافل نه ما تفریحات ناسالم رو نمیپسندیم ما برزش های بی هدف رو نمیپسندیم حتی تو اسلام ما با شادی اسلام مخالف نیست دو روز در ایام قبل از اسلام در جاهلیت ایامی تعییم شده بود به عنوان ایام شادی تو این روزها در جاهلیت جشن می گرفتن گشنهای شروع رو بود فیروز و مهرجان اسلام که آمد صحابه فهمیدن اسلام یعنی تصمیم اسلام یعنی این که من تو تمام شعونات زندگی من خودخواهی رو و خودپسندی رو بذارم کنار و هرچه خدا گفت همون کار رو بکنم شادی من رو هم باید خدا سعید بکنه آمدن پیش بارگاه هده گفتن خب اسلام چه تعریفی از شادی داره و ما اگر قرار باشد جشنی داشته باشیم جشن های بزرگ و باشکوه جشن های ما چیه رسول باگر یه صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن عید فیتر و عید قربان روز جشن و پاکو بیشن <تصحیح> یک ماه روزه رمضان گرفتی بعد از روزه رمضان بیا بر خودت جشن بگیر.» برای خودت، برای عملکرد خودت، برای یک ماه عبدیت، برای یک ماه مبارزه با نهست، برای یک ماه خودسازی، خودت لبات نو ببوش، اطری بزن، به سمت ایزگاه و میادگاه عشاق بیرون از جهر برو و برای خودت پاکو بیکن. ایگه قربان که میاد، یک ازعاد مسلمان ها مشرف شدن برای عدای یک رکن اطلام، بخودت، داری قربانی رو میخوای نظرانه و پیشکش به درگاه خدا پیش بکنی که این چیه؟ این سنت ابراهیمیه ما ها یا رسول الله این قربانی ها چیه؟ رسول با فرمودن سنت ابیکم ابراهیم سنت فدر شمایی ابراهیم. روش ابراهیمی رو میخوایی زنده بکنی برو به میادگاه آشقان خدا لبات خوب ببوش و اون شادی پرمعنا و شادی که بیداری میاره و شادی که در تو قیلت ابراهیمی رو دو مرتبه تجدید و تازه میکده این شادی رو برای خودت داشته باشه اسلام همچنین برای ماتمها و برای بالاخره مراسم قم ما هم راهگارها و تدابیری داره دو چیز رو اسلام هست. تو هیچ چیز ما غفلت نباش. بهترین چیز رو بپوش اما با غفلت نپوش. من لبه تطوب شهره کسی که این لباس رو از روی غفلت فقط برای تکبر و خودنمایی میپوشه خدا لباس ظلت رو در قیامت بتنش میکنه اما یکی دیگه, دیگه لباس خوب میپوشه ان الله جمیل و حب جمال الله زیباس الله زیبا پسنده و اما به نعمت رب کفه حده آثار نعمت خود نعمتی که خدا بهش داره میخواد در خودش ظاهر بکنه این خیلی خوبه اسلام با پوشش خوب اسلام با لباس خوب مخالف نیست. اسلام با تخریح سالم مخالف نیست دوستان من در ماهی قرار داریم که ماه بیداریه ماهی که در این ماه اگرچه تا داغ بزرگ بر صفحات تاریخ برای مسلمان ها شده و قلب هر مسلمان غیور و بیدار دل از این سحنه های سکان دهنده می لخزه محرم ماه بیداری در زمان ستم به خاطر این بیان و فکرها و ازها و اون وجود مسلمان رو منحرف بکنن تقویم هجری قمری رو کردن تقویم هجری شمسی مبنای محاسبات رو گذاشتن بعد تقویم شمسی با اولین ماه اسلامی ما مسلمان ها که محرم بود تبدیل کردن به پروردین این ظلمی بود که در زمان ستم شایی شد چرا؟ چون من مسلمان خون سیدن آقا عمر بن خطاب عمیر المؤمنین کسی که رسول فاق علیه السلام, السلام میگه اگر بعد از من نبی میامد عمر بن خطاب رضی الله تعالی عن بود. این خون رو که در محراب رسول الله چکیده شد من این روحیه جن ساری و فداکاری عمر رو فراموش کنم تو دهم ده این ما خون نبی رحمت و خون اهل بیت نبی خون حسین و خون فرزندان دیگر علی مرتضا ابو بکر ابن علی عمر ابن علی در میدان محشر در میت تحنه فرودا شد چرا؟ چون برای من تو یک دست باشه من بدونم که سال خودم رو با چه روحیه ای شروع کنم یکم محرم عمر یادم بیاد و مسلومیتش در محراب رسول الله درم محرم یادم بیاد از اون روزی که حسین در کنار برادر خودش عبوبکر در کنار برادر خودش عمر هر زندان علی مرتضا در میدان کربلا جن ساری کردن و با مظلومیت خودشون استکبار و استبداد رو و خودکامگی رو برای همیشه به زبالدان تاریخ انداختن مبدع تاریخ ما مسلمان چی شد؟ اگر تو عالم مسیحیت نگاه بکنیم مبدأ تاریخ خودشون رو کردن چه؟ میلاد مسیح. اما چرا اسلام ایمان مبضع تاریخ و خودش رو میلاد رسول پاک نکرد؟ سال جوابش ساده است چون عمر نمیخواست شخصیت پرستی رو و تقدس معابی رو تو مسلمان ها تردیج بده عمر میخواست به جای این که شخصیت رسول پاک علیه السلام رو درش مبالغه و قلوب بشه بیایم به جای اون آرمان رسول پاک رو تو جامعه زنده کنیم اهداف آری شو زنده بکنی نامه ای به عمر بن خطاب رضی الله تعالی عن رسید در همون ابتدای امر خلافت که این نامه در سرلوحه این نامه نوشته شده بود شعبان المعظم حضرت عمر به اون قاصد گفت که این نامه‌ای که به من رسید ظاهرا در شعبان نوشته شده گفت بله گفت کدوم شعبان شعبان فارسال شعبان دو سال پیش یا شعبان نمیدونم پنج سال پیش کدوم شعبانه گفت نمیدید حالت آمار گفت بیاین مبدأ تاریخ سعیم کنیم. تو ملت های مختلف مبدأ تاریخ سعیم میکنن. تاریخ, تاریخ از صفرشون از کجا شروع بشه این رو میگذارن بابسته به یک واقعه بزرگ و میگذارن به یک سحنهی که در همه اون ملت و قوم یک ویژگی خاص داره خب گفتیم عالم مسیحیت آمدن و این رو گذاشتن میلاد مسیحی یک تاریخ موقوم یک تاریخ تخمینی رو از تولد عیسی تعیین کردن به عنوان چه؟ به عنوان تاریخ و قدر اما اسلام آمد این کار رو نکرد رسول باگر حضرت قمر رضی الله تعالی با اون فراست باطنی که داشتن با اون قدره دوراندیشی که الله بهشون داده بود بر دو نیم قاره دنیا حکومت میکردن و خایبود حکومت و ای در عصر خودشونو بودن که زبانزد خاص و دوست و دشمن داره این دموکراسی عمر رو به عنوان درالمصل باید یقت کنه خیرخویی و خیر اندیشی عمر. به حال شورای مشوره تشکیل شد مهاجرین انصار گفتن مبدأ تاریخ مسلمان ها کی باشه؟ چهار گذینه گفته شد. ازی گفتن ازی بگم پنج گذینه که ازی گفتن با مشابهت رومی ها فلان روز رو به عنوان مبدع تاریخ ترین کنی حضرت عمر مخالف هست کن گمانی میتونیم مبدع تاریخ مسلمان ها رو با تعصی و تعصیر از یهود و نصار ها بکنیم و غیر مسلمان ها تعین بکنیم تشبه ایرون ها ناجرس گذینه بعدی ازی گفتن بیاین مبدع تاریخ مسلمان ها رو میلاد بکنیم ق ازده ای گفتن بیاییم وخات رسول باگلیه السلام رو مبدع تاریخ مسلمان ها بکنیم مصیبت جانکایی که برای هر مسلمان دردنگیزه ازده ای بیای بیاییم مبعث رو و روزی که پیانبر ما به بمب... پیانبری مبعوض شد مبدع تاریخ مسلمان ها بکنیم ابن حجر از قلانی رحمت الله حسدرین هارو میگه و گذینه چارم را علی مرتضا داد گو بیاییم مبضع تاریخ مسلمان ها رو هجرت بکنیم تا قیامت مسلمان ها که هجرت تاریخ سازه هجرت باعث بیداریه هجرت باعث تحمله هجرت و خانمان رو به خاطر خدا ویل کردن للفقراء المهاجرین مهاجرینی که فقر رو و حضرت رو به خاطر خدا تحمل کردن اینها شانوده یک حکومت اسلامی رو گذاشتن هر حضرتی به خاطر خدا یک تحضل از خواب به خاطر خدا حضرت کردن و به کنج قاری پناه بردن تاریخ تاست شدن عبوبکر رحمت الالمین با هم دیگر حضرت کردن رحمت للالعالمین و یار قارش تاریخ ساز شدن رو به دنیا بفهمونیم که تاریخ سازی منوط به اینه که حضرت روحیه حضرت در ما باشه چیزی ما رو زمین گیر نکنه چیزی ما رو به خودش مشغول نکنه و هر لحظه آماده باشیم حضرت در راه خدا رو برای خودمون یک آرمان و یک هدف بفهمیم و حضرت عمر رضی الله عنوان این رو تایید و تثبیت کردن و مفتع صاحب و مسلمان ها شد که جرد اما متاسفانه به خاطر این که ما محرم و رشادتهای محرم خون عمر رو و خون حسین رو پراموش کنیم به جای که به خاطر این که, این که من, من و شما یک محرم رو و دهم رو آشورا رو پراموش بکنیم برای ما فروردین آورده. تو فروردین سیزن ودهره تو فروردین چارشن به سوریه. تو پروردین نمیدونم شادی های بیعدد شما با اینا مشغول باشید شما رو کی آورده بین؟ بلاخره روحیه حماسی و انقلابی حلابی بله دوستان من ما در تمام شغلات زندگی خودمون عمل روی اما مبنای عمل ما افساسات و جذبات سردی میشید مبنای تمام عمل کرد ما برای اینه که ما ببینیم الله و رسول چه روزی رو بر چه مبنایی تاین کردن ما کار رو میکنیم در شادی ها ما متاثر از رسول فاکی چی میگه به ما اون شادی که رسول روز به ما تجویز کرده اون شادی شادی ماست و غم ما اون غمیه که رحمت اللعالمین برای ما روز غم تاین بکنه حالا دیدگاه اهل سنت و جمعه نسبت شهادت دوستان و خدا در راه خدا که شهادت عمر هست، شهادت سید را، حسین هست، یا شهادت زنورین، کسی که دوتا دختر رسول پاک، یکی بعد از بیگری نصیب او شد، دو مرتبه داماد رسول پاک شد، دو بار داماد، دو بار بر او سحی رو دو بار او رسول پاک تایید کرد، و دختر خودش رو داد. در طول تاریخ نصیب ایج انسانی در ایج امتی نشده که دو تا دختر نبیر رو یکی بعد از دیگر به اززواج خودش در بیاره این نصیب عثمان شد شهیر مظلوم قرآن با چقدر مظلومیت خواه دنیا رفت نگهبان خانش افتی کثیری از صحابه هستند. حسن و خسین دارن نگهبانی خانه می میکنن این مظلومیته شهادت خسین مظلومیته شهادت عمر در محراب رسول مظلومیت شهادت سید ابن مفتیب به دست حجاج بنیوسف تقفی یک مظلومیت خون بیشت هزار نفر بیسترین افراد این امت رو این خوناشام و این مستکبر حجاج خون اینها رو رید. اما ما در مقابل این خونها باید چکار کنیم وشتان من اولا شهادت آرمانه لا بد است ان قتلوا الله ثم عفیا ثم قتل ثم عفیا ثم قتل رحمت للعالمین به عنوان یک آرمان شهادت رو معرفی کردن که من نبی آرزو می کنم یک بار نه چند بار در راه خدا کشته بشم دو بارتر زنده بشم به معنا شما فهمون که شهادت یک آرمانی که حتی یک نبی آرزوشو داره شهادت چیزی که الله میگه بایستخده منکم شهداء ای بکرو از شما رو به عنوان شهید میگیرم شهادت جز افرادی که خدا بر اونها انعام بیجه خودش رو کرده انعام الله عليهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین شهداء جز امون عم علیهم حسن شهداء کسانی حسن که ما آرزو میکنیم در هر دعای خودمون حضرت عمر خودش دعا میکرد اللهم را دخلی شهادتاً في تبینك و از القبری في بلد نبیك خدایا شهادت در رای خودت را نصیب من بکن و قبر من را در جوار نبی خودت بکن یک آرمان ما در مقابل اون کسایی که شهید شدن و النعری مفتالی خودت و رب ملکعب زدن اون کسایی که شهید شدن و بعد از شهادت چیزی رو در تاریخ برای خودشون تفت کردن با لبخند شادمان از دنیا رفتن ما تنها کاری که نسبت به این اکابر رو بزرگان می اینه که نام اونها رو به نیکی ببریم ما برای عمر اون روز روز جشن ما هست روز پاکوبی ما هست روز تولد عمر برای ما روز جشن میست روزی که من تونستم وارد زندگی کنم و بر مسیر عمر حرکت بکنم روز جشن منه من برای شهادت عمر مراسم خاصی نداریم اما موسم ما روزیه، روزه، گم ما روزیه که ما نتونیم عمروار زندگی کنیم مسیر عمر رو بل کنیم خدایی نکرده مثل ابو لغلو زندگی کنیم با اون فساد، با اون فخشا، با اون غفلت، با اون معفیت، با اون دلچسپی ها به دنیا شاعران بزرگ اهل سنت و جماعت عقب نموندن و این غمر و این آرمان رو به جامعه منتقل کردن شاعر در داشنای عصر حاضر نباز عصر حاضر علام اقبال شاعر بزرگ اهل سنت در رابطه با امام حسین چعلقابی رو بکار میبره آن امام عاشقان پور بسول سر به آزازی زبستان رسول ماور امام عاشقان میدونیم و عمل کرده اون رو تو زندگی خودمون بله خدا نکنه روز جسد من روزیه که من بتونم مثل حسین زندگی کنم با شهادت سلبی و خرنیت آزادگی روزی که من بتونم به این نتیجه برسم که میتونم عملیت جانی و عملیت مالی خودم رو فدای عملیت دینیم بکنم. تو جامعه که زندگاری من برای من مشکل شده تو جامعه من حاضر باشم امنیت مالی و جانی خودم رو نستخصه بر طبق اخلاص ندارم و فدا بکنم اون روز روز جشن ما هست و اون روزی که ما مسیر حسین رو گل کردیم و تاری ها و خاری های یزید در عروسی ها مال ما شد بینمازی های یزید که در نماز ها حسستی می کرد تو جامعه معامد تو خانواده معامد اون روز روز ما تمه اون روزی که شبکه های محباری جهود و نصارات طول سال زدن تو خاره ما و صدای اونها بلند بود اون روز روز ماسم ماست نمیشه که یک انسان مثل ابو لغلو زندگی کنه و آرزوی حشر با عمر داشته باشه و با نمیشه که یک انسان مثل یزیز زندگی کنه و بگه خدا قفور و رحیمه و خدا اون رو با خسین حشر بکنه بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویرانه ها کارید و رفت رمز قرآن از حسین آموختیم ما رمز کربلا رو و رمز شهادت طلبی حسین رو از قرآن گرفتیم ذاتش او شغله ها افروختیم اون شغله ی حسینی رو در خودمون ایجاد بکنیم جهان بینی مولانا را هم به نسبت نسبت به سیدنا حسین رضی الله ما نسبت به حسین تنها یک محبت احساسی و آتفی رو کافی نمی دونیم بلکه ما باید بدونیم که درد حسین تنها تشنگی برای یک درعام نبود درد حسین تشنگی افرادی بود که به پریاد اون لبیک بگن و در میدان عمل بیان و در مقابل فساد و فشا و بی ها قیام بکنن من یه جایی رفتم مجلس عروسی بود، هیچ فامیلی از کنارش راحت رت بشم بهش گفتم من نمیدونم که شما کی هستید و چه مذهبی دارید، اما من نمیخوام از کانال مذهب نسیحت بکنم. یک سوال داد میکنم چرا حسین بر علیه یزید قیام کرد؟ سوال ازت بکنم. من نمیدونم مذهب چیه، دین چیه. سوال ازت میکنم تازه داشتون ارگو علیه نشتی را تو خودش رو میگذاشت. حسین چرا بر علیه جدید قیام کرد؟ یک محسیک از جا برد من گفتم قیر از اینه یک سری فسادها و یک سری ها و یک سری گناه های پاهش تو کارینه شایه یزید بود که حسین در مقابلشون تاب نیاورد گفتم بله همین بوده گفتم اگر امروز حسین تو این جامعه بیامد آیا بر علیه ساز و سرنا و رفت و رکاسی و میگو ساری و افتصاد و فخشای هم قیام میکرد یا نمی سرسپاین افتاد گفتم این کافی نیست هر کی می باشم محبت اهل بیت و آل رسول جزء لاجنتک اعتقادات ماست من نمی شه اسمم مسلمان بون که کی که با آل رسول و اهل بیت نبی محبت نداره اما تنها ابراز محبت احساسی با اونها کافی نیست کسی که فقط عمر عمر میگه و از عمر، سیرت عمر، صورت عمر از اون جان نصاری عمر چیزی نداره اینو اسلام ما نمیپسنده. پسنده حضرت مولانا در دفتر ششم خودش به عنوان آخرین مطلب وقتم تمام شده چه زیبا می فرمد جهانبینی احل سنت را و زاویه زید ما نسبت به شهادت عبرمردان ما ما همه داغدیده عمریم ما همه داغدیده ای ح هر بیداری در این ایام فترتش داد میذاره و سقان و شیوه بیاد اما بیاییم به این ایام رو دو مرتبه تازه کنیم چی بود که یزید رو منفور کرد اون تو زندگی من نباشه چی بود که حسین رو بر صفحات تاریخ مندگار کرد من اون مسیر رو ادامه بدم چی بود که ابو رو منجوز منجوزی رو به سوالدار تاریخ انداخت و چی بود که عمر رو عمر کرد من کو مسیر رو ادامه بدم حضرت مولانا در دفتر ششم میفرماست یک قومی رو دیدن که ابراز احساساتی داشتن با حسین میکردند بعض اینها رو که دید خطاب به اونها گفت پس عذاب بر خود کنید خوب دگان وان که بد مرگی ای این خواب گران کسی که مفیر حسین رو ادامه نده و کسی که اون غیرت و شهامت و اون خرمیت و آزادگی حسین شار زندگیش نباشه بر خودش باید ماسم بگیره بر خودش باید غم بخوره که چرا هم باختم و هم رو از دست دادم روح سلطانی زندانی بجرد حسین روح سلطانی داشت به سمت ملع اعلا رفت شهادت نصیب شد کرامت شهادت نصیب شد روح سلطانی زندانی بجست جامعه چه در رانیم چون خواهیم دست چرا ما برای حسین قم بخوریم برای خودمون قم بخوریم که آیا تونستیم مسیر و حتین ادامه بدیم چون که ایشان خطروی دین بودن اینا خطروان دینن احل ویسن آل نوی هستن وقت شادی شد چون که بشکستن بند. برای اونها روز شادی بود روز شهادت حسین روز شادی برای حسین بود و برای من درست عبرس بود که من از این روز درست بگیرم روزی که روح عمر در یکم محرم به آسوان پرواز کرد شادی امر. روز شادی عمر بود و برای من روزه غمه اگر نتونم چه اون مسیر عمر رو ادامه بدم سوی شادربان دولت تاختن به سمت سرافرده اقبال حرکت کردن کندو زنجیر را انداختن زنجیر تعلقات ما سوالله رو کندل و پاره کردن و حرکت کردن به سمت اون حریه آزادی که شعار مسلمانه مسلمانی که به زنجیر ماجیت بسته شده مسلمانی که به زنجیر شبکه ماخواری یهود و نصارا بسته شده مسلمانی که جلوی سید مقتدر یهود و نصارا داروی تسلیم زمین زده مسلمانی که کنار منقلب بافور یهود و نصارا کمرش خمیده مسلمانی که به جای که پرچم حسین تو دستش باشه جام شراب تو دستش بر خودش باید ماتم بگیره بر خودش باید گریه بکنه این نفهمیده حدف قیام را این نفهمیده حدف شهادت را روز ملک و گش و شهانشاهی گر تو یک ذره از ایشان آگهی بر نی آگه برو بر خود گریه اگر از این آگاه نیستی از این رمز شهادت ها برو بر خودت گریه بکن زن که در انکار نقل, نقل و محشری چون تو قیامت رو هنوز درک نکردی محشر رو هنوز نفهمیدی چیه و شهادت تو امروز برای یک مسلمان چیکاری میکنه بر دل و دین و خرابت نو کن که, که نمیبیند جز این خاک که, که هند باید من یقی خودم رو بگیرم این هایی ای که در اسلام شهید شدند، با یک درجه رفی از دنیا رفتن من چطور از دنیا قاهم رفت ورحمی بینکش را نبت دلیل پوش دار و جن سفارو چشم نصیب همه کل به خدا کن و این استقناعی به میدان بیا و اون مسید اونها را اعلامه بده دوستان من محرمه و محرم ماه بیداریه محرم ماهیه گلو اصلا من واید اون غیرت و اون شهامت و و اون غیرت اون و شهامت و رو و اون آرمان های بلند و احداف عالی رو تو زندگی خودم تجدید بکنم با امید این که این محرمه ماه محرم بیداری و باشه و با